وعالك على و آله قطعیدین الطاقرین المحسون و لحظه و از که دروازه که الله سره سره وفاقاً در مروم مولا محمد امین استرابادی که مبدع این طریقه بود اونها رو متعرض شدیم که آیا دلالت میکنه در این مطلب یا نه یکی از رواید شماره 28 حدیث ریان ابن سلطه از در همین چاپی که دست من هست چاف معروف به چاف معلومات این در صفحه 28 از همین چاپ. آمده در کتاب مرموم شیخ صدوق، در سه کتابش نمکه از محمد ابن موسی بن متوکل انه علی ابن ابراهیم انه ابی این تمام مشایف قوم هستند. انه ریان ابن سلد انه علی ابن موسی انه ابی ها انه آباه انه احبی المومنی قال قال رسول الله صلالله علیه و علیه قال الله جلد جلاله حدیث قدسیس بسته ما بی من در برعیهی کلامی چون این هم تفسیره برعیه شده رضا اینجا به اصطلاح مرحوم صاحب وسائل امرده و ما عرفنی من شبهنی و خب اون بحث معروفی که تشبیح دیت منتکلمین قائل بودن و ما علا دینی من استعمل قیاس دیدینی این روایتی که در مسادر قوم بوده از کرد این سابقا توضیحات نسبتاً حالا مفصلی آقای مفصلی یه مقدار از مسادری که در قوم متعارف بوده و معروف بوده با اینکه در اختیار مرمون کلیمی بوده نقل نکرده یه تیش مجموعه است که منتصب است به حضرت رضا مجموعه ای از احادیث که گاهی هم ازش تحبیر به صحیفت رضا میشه گاهی تحبیر به مصند رضا میشه سنده های متعدد داره این در حقیقت نصفش متعدد نه خواهد سند متعدده از کدیم حضرت داتا و تراسا و, و یکی از خصاصشون این بود که بر اثر اون شهرت علمی که ایشان داشتن و رضع خاصی که ایشان در مدینه داشتن مورد قبول کل بودن در کتاب تقریب و تحضیب مهجر نه میکنه که حضرت هزار در سن 20 سالگی در مسیل نبی فتفا میدادن 20 سالشون بود این خیلی خوب تحجیبه و الان در خود مسیل نبی همه علمان شیعه بکنه تو مسیل نبی فتفا بودن جوروشون میگیرن الان به هر حال با اون اوضاع و شرایط زمینه جوری بود که قبول داشتن یعنی خود اون جامعه مدینه اون زمان هم مثل حضرت هزار و سامنگوه علیه قبول داشتن و اگر در نظر بگیریم که از تو در اون زمان دقیقا معلوم زمان ها در میان اهل عامه یه بحثی دارن که شخصی که میخواد تحمل حدیث بکنه اول سنش بیس ساله یه این بار تحمل حدیث بکنه بعدن فقیه بشه تا صلاحیت افتاد داشته باشه اما راجع و در همون سن بیس ساله یه شون کانی یفت ناس و مصد نبی و ها از فی کانی یفتی بذار حضرت رامول علیه شخص خاصی پیدا کردن در کتب زیدیه هم نام ایشان با عظمت برده شده در کتب اسماعیلی ها هم همینطور اونا هم قیلی مطالب علمی حالا اون یک شرق دیگه داره این جمله از نکاتی که برای حضرت رامول اتفاق افتاد قبل دستم برای تحروف چندی نفر از حضرت مجموعه احادیثی رو مسنّت نقل کرده، مسنّت یعنی اینطور، آن عیب موسی، آن عبیه، آن آبایی، آن عمیر المؤمنی. این مجموعه متعدده و یکی نیست، اشتباه نشه یک کتاب واحد می چند سنت. هر کدوم که نقل کردن مثلا یکی نقل کرده تا هدیت، یکی نقل کرده تا و گیست، یکی نقل کرده چهل تا. بعضی‌هاش مشترکه، خیلی‌هاش هم منکرده. هر کدوم به فرا. داریم ما یکی داریم ما از هیچی که از عین مجموعهی نداریم به طور مطلع. از امام سادر نصده هم داریم از موسف جعفر از حضرت سجاد هم داریم کم داریم اما از امام سادر هم بیشتر از همه محل اطلاق بیشتر حضرت رضا هیچ کلوم اندازه حضرت رضال اسم رو ما به هر سب افتلاح سنت مصند و, و احل ال بیت بذاشتیم. خودشون در کتب زیدی هم چاپ کردن این کتاب روینا مسندل امام رضا و صحیفت و رضا بالمان پیش ماها چاپ شده به اسم صحیفت و رضا اینها ها اسمای مختلف بیا حقش اینه که اسم نداشته کتاب در میان کتب احل سنت نمیشن لبو جز اونان رضا لبو کراس اونان رضا ان علی ابن موسا بایی اسمش کراس رو داشتن مثل اموزه یک فرمه و یه اسمشه کیهوز گذاشتن و یه اسمشه مسند گذاشتن و یه اسمشه صحیفه گذاشتن خود من معتقدم یک جایی هم داره دنبال بخشش میخوام برم اسمش رو میداشم مسند اهل البيت بهتر بود این است که با اون چی که متعارف بوده در اون زمان میخورده یعنی این اسطلاح مثل مسند احمدالنه همبل اونسا میگه مسند فلا،, فلا این به مسند اهل البيت میخوره الان یا این کتاب که به اسم مصن از احلیت بیز را اسم شما دوشیم اسمه جعبی خود اون در یک رواست آمده این مسانی که از امام رضا نفضه زیاده به میان میاد حالا دقیقا تو زهن نیست بینه 60 تا 80 تا هست خیلی زیاده یعنی هیچ کدر از علمه ما اینطور ندارم نظر محزن رواستش هم حالا مثل اینجا بیان ابن سل اگه درست باشه اگر رگیان ابن سر درست باشه این مثلا شیعه از بله موظم قباتش خیلی کم رو تکتوکی رو کلینی نقل کرده موظمی که اونها رسیده تواصل صدوقه خیلی بیاشم دیگه منفرد صدوق موظمش شاید نزدیک 90 درصدش انفرادات صدوق کیس دیگه هم نقل نکرده چون ایشون در این رشته اصلا کتابی نوشته این کتابی داره نام اون اخوار رضا چون کتابی نوشته هر شارد و واردی رو جمع کرده و مثلا به اینجا علی ابن ابراهیم استاد کلینیه. کلنه نقل نمی این با مثال بخواستم قدم قدمت رو کن. ارزو کنه کلنه نقل اما صدور نقل اما کلینی رو نده علایه این یک مجموعه که نیاز به چهر خاص خودش داره این ریان ابن سلط اگر باشه از اشاره قومه. احتمالا در زمان آمدن حضرت به طرف خراسان از قوم رفته خدمت حضرت رسیده یک ریان ابن شبید داریم که از ایا محرم هم هست یه ابن شبید این کنتر باقی اندشه که از حضرت رزا میکنه و اول محرم اون ریان ابن شبیده. این ریان ابن سلطه. اون ریان ابن شبید اون بیشتر چون یک دو بطرم خواهد آمد ان شاء مشخص که مشخص نیست من مطلب مثلا یک آقای میگه در غزنی خدمت حضرت این 120 حدیث دارم یا آقا دیگه میگه فلان جا 140 با هم بیان تفاوت داره یک نفر نیست یک کتابم نیست خصوصا یک نفر نیست دو بین 60 تا 80 نفر اما چند نفر مجبور الهویه مطلق هم هست با اونا اضافه دیم شد تا 90 نفر برسه یک نفر نیست موظم اینها شاید مثلا دو درصد ایک کلونی اوورده ولی بله اصلا کلونی کلا اینا نیورده مثلا این کتاب چون حضر رضا عنوان امران خالی خواهی نخواهی در کتب اهل سنت هم وارد شده و نستجی رو به مناسب نیست خود میزان ال اعتدال نقد میکنه خود میزار اعتدال ذهبی اموزا توصیف نمیکنه حذر صادق نام میبره میگه که اختلاف اما خودش میگه توصیف میکنه درم اما هزار رضا توصیف نمیکنه و از ابن عدی است که نعم میکنه و یه همین در حدر راوی هم قبول نداره اون یروی یعنی و یه یعنی اشاره به همینشون واقعا هم در این مجموعه ای که به حذر بن شده نوشته بازش خیلی دیگه من وارد تفاصيل بشم در کتاب کامل فضائل مال ابن عدی حدود چند صفحه شو آورده که این عقاید قابل قبول نیست مال پیغمبر نیست مثلا در به بنقشه گل بنقشه مثلا آورده ایشون حدود دو صفحه سه صفحه از همین صحیفه آورده واقعاً اینا صحیفه واحده نیستن من میگم اینو کنم. پس بعضیا فکر که این صحیفه واحده است نسخه متعدد داره نه صحیفه واحده یکیش اینه ببینید این شورای 34 اون نمیخواستن بگن شما بیستیوشالی که اینجا هست نگاه کن، انه ریان ابن سنف انه رضا علیه السلام فی حدیث انه ان المعمون سهل علماء الاراب و فراسان احادیسی هست که ریان ابن سنف نرم کنه در مجالس هزار رزا در به اصطلاح مرد با معمون به احتمال بسیار قبی اونجا ریان ابن شبیبه نه ریان ابن سنف این ریان ابن شبیب دایی معتسم معتسم که خلیفه بعد از معمونه برادر معمونه معمون هم مادرش کنیزه همین مادرش کنیز نبود هره بود به هم اما معمون مادرش کنیز بود مادر معتسم هم کنیزه این دو دوتا این دوتا و مادر معتسم کنیزی نبوده که مثلا فرضش از روم به قول میکنید خیلی زومی مثلا معروف از اونجا وارد باشن مولده بودی اصطلاح یون زمان بعضی‌ها مثلا مولد یا مولدین یا مولده اگر چه در مادرش ارد بودن خود اون بچه هم کنیز دنیا میامد چون در دنیا اسلام بوده به اون گفتن مولد اصطلاحی بود در چون اول این بحث خیلی زارد مفرح نیست من برای توضیحش از گفتم از کیف ماکان مثلا همین شماره سیالو چند تا دیگهشم میخونم ان شاءالله براتون میخونم اینا مختلفن یک نظر نیستن یک کتاب نیست هر کدومشون چند تا حدیث زل کرده تا اثرها به استثنای یکی دو موردش اعلمشون ما نمیشویم یعنی از هفت تا هشت تا اعلمشون ناشناسم باشون نداریم از و از بزرگان اصحاب ما هم نیستن هم شناس باشه از بزرگان احساب و مالیست یه توضیحی داشتم سابقا هم عرض کردم این فقط برای اینکه اشتباه نشه اون ریان ابن شبید. چون خواهرش مادر معتصمه بن هارونه خودش هم مولد کوفه است یعنی که در مادرش abi بودن در کوفه هارون خواهر این رو میگیره به حساب که مادر معتصمه خود من احتمال میدم که این رو شاید یک میگم از درستار بنی عباس خالت مثلا خدا که تجسسی و عذر ازا داشتی و این رو معتصم میفروسه به خراسان و این در سفرها همه های معمون بود یه یعنی دقیقه برادر معمونه دایی خود معمون نیست دایی برادرش معتصمه ریانت نشدید احتمال میدم ایشون ایش چیزایی رو بهم دیگه کرده عوضت قوم قوم هم شعه بودن مخلص بودن از ایشون قبول کرد. حاله ایشان ریان ابن شبیبه مثل در کسال های ما این دوتا با هم دیگه جا شدن اشتباه شدن ریان ابن سند الان تقدیر بود جوز خارجیش از اشائره قومه این ریان ابن شبیب, شبیب بزرگ شده کوفه است خودش هم عبده یعنی برده بوده دایی معتسم خلیفه معروف عباسی بعد حضرت میگه بعد از معمون بعد از برادرش برادر مادری نیستن با هم علایه حاله این احادیث قالبن انفراد داره، یعنی کسی نقل نکرده این احادیث نفی قیاس هست و نفی تشریح هست و نفی تفسیر برعی سه تا مطلب و حالا هر سه مطلب درسته حالا این رو بانون حدیث خودسی قبول بکنیم یا حدیث عن رسول الله یا از این اون بحث دیگه یز این رسول الله حقیس درست حدیث اون که این جواب تفسیر رعی رو بعد ارساییم کنم سابقا نمیشاره کنیم باز حدیث شماره 22 29 محمد ابن علی ابن حسین اگر به اصلاح برده مرحوم شیخ صدوب ان محمد ابن عمر حافظ از بغدادی این از است که مردم صدو در سفر بغدادش از ایشون نقل کرده ظاهرم صدو حدود 352-53 بغداد میاد این شخص مترفای 355 او آخر و عمرش رو در کرده از ازش نقل این معروف از حافظ جعابی حالا میدون جعبه میفروخته چی ما <تصفح> بحافظ این هم گذره عاجی به درنه یعنی ما اصولا در دنیای اسلام چند نفر داریم که فوق آدم سی هزار و چارزد هزار حدیث سندن و مطنن یکیش اینه یکی دیود ابن عبده بود که اسم بردن یکیش هم این شخصه این هم جزه و دهره لیکن اهل سنت نمیشتن با تمام وساقتش کنه من فاسقن برقی قدیم به تشیعه هم نسبت داده شده احتمالا این پسرش به خاطر هم کنه ان محمد ابن احمد ابن صابت این محمد ابن این راضی میشنسیم ما ها این احتمالا مال خودشون باشه این حسن ابن حسین اینجا در کتاب صدق قربی اینجا ارنی است به نظر شد ارنی هم درست باشه ان این امر ابن صابت از این این اول مقدام معروفه در کتاب ما هم هست جز در ماست این عطا ابن صائب، از اهل سنت این ابی ان ابن عباس این من يحيى است بنازن ابن يحيى باشه نه ابي يحيى. انبنا عباس قال رسول الله دکر خود بسندي. یا گول فیا هو اخي وزير و هو خليفتی و هو المبالغه عني. انس ترشد تومو عرشدكم و انس تبع تومو نجوتون و انس خالد تومو غللتون. انب الله عزّل علي القرآن و هو الذي من خالد و هو و من يبتغي علمه هو ال غير علياً حلاك. این مت بحث کلامی رفتی به اصول ندارد. شماری سی مرحوم شیخ صدوق از یکی از مشایخش به نام حسن بن محمد بن سعید هاشمی اینو نمی‌شناسه کل اندازه مشایخ مشهور ایشانه. ارشدم صدوق حدود 240 تا استاد داره تقریبا با کم و زیادش کم بود کم پایین. از این 240 تا حدود 7 تا جزء الاعلام خود در 15 داشتن می‌شناسین بقیه چی دیگه نمیشناسیم حسن ابن محمد ابن سعید هاشمی ان فرات نظر صدش هم همینه این واسطه است به کتاب فرات کتاب تفسیر فرات نوروی کوفی احتمال قدیمی دیدم ایشون جزء زیدی ها باشه چون در بین ما معروف نیست تفسیرش هم جنبه تعبیری داره اخیراً چاپ شده قدیما هم موجود بوده احتمالا میاد اون حسین ابن محمد باشه ان محمد ابن زهیر نمی شناسیم هیچ برادر نمی شناسیم مثلا ممکن ممکنه محمد ابن زهیر باشه اسم دیگری باشه اصلا کلا نمی شناسیم ان محمد بن حسین یا حسن ادونس از ادونس ابن اخي یونس بغدادی اگر واقعا سردارادر یونس باشه نمی شناسیم مثلا برفرضم باشه ان محمد ابن يعقوب نحشلي اینم که کلا نمیشاستین ان الرضا علیه السلام این آدم صاحب گوهر رضا علاوه شکی مشخده رو یکی از اون کسانی که از رضا نغمه میکنه شخصی شنو محمد ابن يعقوب نحشلی که نمیشستن کلا و به احتمال قوی از عامه باشه ما اینو نمیشست اینم ان النبی ان جربه ال میکا لنصافی الله جزو احادیث خصوصیات عن الله لا لا لا انا خلقت الخلق بقدرتي بخاطر بکنین با این توضیحاتی که من دادم کاملا روشن شد که اشکالات مثل ابن عدی اصولا محره نیست اون محرح بقنه هم انگارته که این کلمات مال ازاز رضا تو میگه خب این احادیث جعلیه فدا نکردیم این مسائل ایشون در حدیث قابل اعتماد نیست الان برای شما عرض کردیم ما اینا رو کلا اصلا نمی شناسیم آشنایی نداریم ادعا کرده شخصی به نام محمد بن خدمت حدا داشتید و اینا رو شنیده و این جور احادیث هم الان خوب دقت کنید منفرداً پیش صدوقه هیچ جای دیگه نداریم منفرد و منفرده خوندنی که قبل از صدوق اینا نقل نکرده شاید مثلا شو خب کاری که هم صدوق هم نقل نکرده احادیث ضعیف رو بعد در ما در به نظر من کار خوبیه این که نقل میراث ها کار خوبیه و ضعیف باشه رو قبول نداریم کار بسیار خوبیه بله خلق تون خلق به جهت خوبیش حفظ میراد ها چی بوده چه کار شده کم و زیاد شده بعد ممکنه بعدها چهرها اینا یه مقدر روشن بشه یه مثلا فرد ناسالهی بوده طرح کردن کار علمی نیست انا الله لا الا الا انا خلق تون خلق به قدر بله بعد انا انا یقول فجهلت و اخن و وزیرن و معدی انه ان من بعدی انا خلقی و خلیفه علی ابادی لیبین لهم کتابی و یسیر فیهم به حکمی و جعلته علی علم الهاذی من الزلال و بابی الذین من هو اوتا مزمونش خوبه به بحث معلوم نیست یعنی احتمال به یک چیزی هست رو به دیگه ترکیب کرده جعل کرده باشه به با قول بعده سابقا هم گفتم هیات ترکیبی جعل باشه ممکن مفرداضی خوب باشه چه بحث باشه هیات ترکیبیش من درآورده باشم شکر الله روزی او خدا ایمن تلاش می‌کردن برایش می‌کردن هیچ حمزه بعد از عزالدراز مشهور شده مشکل خیلی از اینها در خراسان و قم و اینجا مشهور شد بازار جواد نرسیده و رواه فراتخ ابن ابراهیم فی تفسیری احتمال احتمال قریب روز زیدی باشه بعد حدیث شماره 31 و عن احمد بن زیاد نجعه علی حمیدانی ما به سوال طبیه همدانی میخونیم اما اینجا همدانیه یکی از آقای موزه که ساکن همدان بوده مرموم شش صدو در سفری که به هج داشتی یا رفتن یا برگشتن من دارم برگشتن یه مقدار از ایشان سماه حدیث کرده و من جمله مقدار زیادی روایات علی ابن رو نه حاشمه اینجا هم میتونه ان علی ابن ابراهیم ان القاسم ابن محمد البرمکی اینم کل. اما عمرو چروق احتمال داره که این قاسم محمد که صعود خراسانی بود آمده در قم مرحوم علی بن لرای ولی شهر ده رفت. نمی‌شناسین. به هر حال ایشون کلا نمیشن انا عبد الصمد الحروی تمام. ابو صالح اون قبرشان مشهور معروف عبدالسلام بن صالح ایشون از اهل امامت این که ذی سرکرده نشون شی از شیعه بود از شوشن شیخ هم گفته عامیوا باشه احتحال بحثی کردن در رجال من با در وقتی رجالی و ایشون اصلش حراتی بوده عباسالت هرهوی در روایات ما نقش دارم زیاد می نقش دارم در جیسه و چاره اما تو کتب اهل سنت نه در سه هایشون در ریل سه زیاد رو برد و سلام اون ساله و مشکورم تضعیدشون کردن اهل سنت انا عباسالت هرهوی انا رضا علیه اصلا شواهد نشون میده در مدتی که حضرت در خراسان بودن ایشون از حراف رفته به طرف مرد و خدمت حضرت بوده شانه تا قد مشهد تا توز که برگشتن و شهید شدن خدمت حضرت بوده بانان تقریبا خادم حضرت بوده ابو سلطه حراوی انه رضا علیه السلام فی حدیث اینه قال لی محمد ابن جه الله ولا تا اول کتاب الله برعیه فه انالله یهو لما یعلم تاویلهو اللالله و راسخون و پیل این درسته این مطلب اما این که آیا احضر زوال جز تعدیله نه و رواح و فی اوین الاخبار از سه مستر همه از علی ابن ابراهیم نسبت به علی ابن ابراهیمشه شاید بشه قبول کرد اون مشکل تا اتصالش به عواصلت حراویز خود عواصلت هم وزعه روشنی همه پیچه بعد هزاره قرار در دوات که از عواصلت اومده مضمون ستوریه که بعد از, بعد از ها بعد از ربایتش یا شبه هست که به خاطر تقراب به شیعه جرگ کرده بشن. شبه هست دیگه برخواه حدیث شما وقتی خیلی اطلاع از احوالات شبه ازش درمیان شیعه نداریم این شبه ها که میاد نیت دیگه نمیتونیم خیلی تسلیم همه بشیم از شماره سی و دو حدیثیست که باز مرحوم صدو من محمد حس میکنی احادیثی احادی احادی که تا الان میشون بعد از کلین احادیث تموم شد صابه و صائل به احادیث صدوق غالبا این احادیثی که خوندیم، از روشنی نداره حدیث درسته حسابی توش نداره و محمد بن احمد سنانی محمد ابن احمد سنانی از مشایخ صدوقه که ایشون هم نمیشناسیم متاسفانه با ایشون هم جزو آشنی نداریم احتمالا جزء نواهای محمد بن سنانه و این ان محمد بن جعفر الکوفی الاسدی ایشون از بزرگان و از و ساکن ری بود اصلش هم عرب واقعا به خلاف خیلی کوفی ایرانی هستن ایشون باز عربی که ساکن ری بوده از بنی اسده و تقریبا داعیه مهم تشیع در ری بوده و مختی زندگی میکرده لذا ما مثل محمد بن احمده نمیشستیم مردم صدوق ادعی از قومی ها بودن که در حال خفیه خدمت این های اصلی رسیدن محمد بن جعفر و از او حدیث نقل کردن اینا رو مردم صدوق نقل کرده لذا وقتی نمیشناسیم شاید به بجاتی بوده که نه امدا خودشون رو به اصطلاح آشکار نمیکردن. این محمد بن اسماعیل برنکی ایشون قمیه ولی خیلی هم ترجمه کرد میشه به غیظ بر میره به قوم ایشون بعدنی نیست الله بله ابن قضایه تصیبش که بد نیست انا عبدالله ابن احمد رازی ایه. که این معلوم وضع خوبی نداره انا قاسم سلیمان که سابقم گفتیم هم سابط ابن عبی یا ثابته ابن دینار که هم سابط ابن دینار که دیناره کنیش عبو صفیه هست. این همون ابا حمزه شمالی معروفه که دعای ابا حمزه رو از حضرت نعروف کرده احتمال میدم چون این دعا سندش معتبره سر سرطابوس که نام میکنه خوا حسن محبوب سندش معتبره و احتمال میدم مرحوم ابو حمزه در مثلا چون من در یک دیدم چون بحث پیدا نکردم ابو حمزه پیدا کردم، من خبرش بدم یک جایی دیدم که از سجاد دو دو سال در کوفه بودم بودن حالا هرچی گشتم مصادر پیدا نکردم نمیدونم که یقین دارم میدونم که حفظ کنم مثلا رو که احتمالا در این مدت دو سال در یک شب ماه در مسجد کوفه این در چند شب چون ظاهرش اینه که یکی شب نیست جلسه نیست یالوازه بسید مناجات نشی در از به احتمال قوی در اون جلسه از حضرت شنیده و ثبت کرده هن سابسه نه عبی سعید عبی صفیه که ابو حمزه سومالی, باشه. ابو حمزه سومالی. پیش اهل سنت هم نقش داره ها اشتباه نشنه. خیلی بین اونها هم حلیث داره. حلیث ابو حمزه بینشون موجوده ثابت اون دینا. ان سعید ابن علاقه این از همون حضارات آمه است. ان عبی سعید عقیتا دینا رسمشه. عمل حسین سعید شهره سالان الله علیه ان عبی حمیر المؤمنی آقال رسول الله یا علیه انت اخی و انعقوب و عمل مصطفى لانه هوبر عن و, و صاحب و تنزیل و صاحب تعویل این به خاطر این کلمه صاحب التعویل هم این بحث غیر الان ما خدمت راه رو کنیم اصولا توسط تعمیر المؤمنین مطرح شده در همون جنگ های جمل و صفین و صفین ها که دیگه داش اینجوری شده بعد به خیلی خارج بشه حدیث شماره 33 ان محمد ابن موسیل متوکه استادشون این هم خیلی توصیق نداره سریم تاوز توصیق کرده مثل علامه مثل نجاچی و شیخ توصیق نکرده ان محمد ابن یحیی احتار از بزرگانه ان احمد ابن محمد ابن ایسایشون هم همینطور ان القاسم ابن یحیح احتمال میدم شبایی داشته باشه محمد ابن ایسا نه احمد اون راوی این کتابه ان القاسم ابن ایشون نبی حسن راشده که بعد اسمش آمده این حسن راشده درست میشه شخص سیاسی بوده این جزء نمکیازی که این حسن راشد داره جزوه عوائل است که کلمات تنمیر و معنی جمع کردن که بعدها مثلا نهجو بلاقه از اینا گرفتن انا امر ابن مقلس اینجا مفلس نمیشه مقلس انا خلاف انا حکییت ابن سعدل عفی انا عبی سعید خدرید حال سل سر سن قول ای تاالا و قال از ده علم ممدن کتابقاللا که و سی و اخی سر ما میداود وقول چهرسور الله, الله و وق الله ازدوه و قول کفاب الله شدیددی به ببدهم و من ده علم کتاب بازذا که اخی علی محریط حالالت داریم روسی گم بر این خیلی کلیک از نکات امتیاز اممی معمولی ده علم کتاب از جمله روایات در کتاب عمالی و با یخ بازم هم صدوق ان علیه ابن حسین ابن شاغه ریه معدل. از شدم اصطلاحاً معدل در اون زمان به کسان می گفتن که به اصطلاح ما مقدم مقدمات درسون اصطلاح خوده مراد از ادب در اینجا عدب القول در مقابل عدب الفعل و اخلاق عدب الفعل می به این ادبیات سر با نهر و این چیزه که ما می در مقدمات. ها اینا رو عدب القول می گفتن که تکه سر با نهر و مقدم ما مقدمات. سرخونه و جعفر ابن محمد ابن مصرور از مشایخ صدوق هر دو از مشایخ که نمیشنسیم جعفر رو سعی کردن به عزیز توصیه او اونم واضح نیست راهی برای هر دوشون نداری لیکن هر دو از محمد عبد الله همیری پسر همیری معروف که از اجلاء اصحاب و استاد کلینی هم هست ان عدی ان غیان ابن سر این خیلی عجیبه مثلا اینشون مشایخ کلینی هست. کلینی اصلا اینا نهارده خیلی تنجا جبابره باخره اینجا که به ذهن من میان ریان ابن باشه این ریان ابن سلس نیست ریان ابن که دائی معتسمه چون فی حدیث ان المعمون سعر علماء الراق و قراصان ان قولی تاالا و این مناظرات و احتمال میدیم که ریان ابن آمده برای احالی قوم نقل کرده البته بیشترش توی حدیث سقلین رو می کنکن فیکوم و, و سقلین کتاب الله به اصطیقی که اصطلاح بحث کلامی قابل قبول جایه بحث نداره من عوض می خواهم سکر اون روحیت هیچ رو کردیم وقت تموم شد به هر حال اینجا اینجا اینجا حدیث به درکونی که به درد حضرات اخواری ها بخوره نبود اما بعد میاد سازش ان شاء الله اونجا حالا این توضیحات داریم حالا اون که به درنگ می خاره بیشتر چیزایی رسل الله علیه و آله